باعث شگفتی است که بعد از این همه جلسه‌ای که با هم داشتیم چنین قضاوتی را در حق من می‌کنید. مگر شأن نزول آیات قرآن به اختیار من و شماست که چنین میگویید تمام این مطالبی که گویم در تفسیرهای خودتان آمده اگر به کتابهای خودتان مراجعه می‌کردید این حرف را نمیزدید ما برای اثبات حقانیت مذهبمان نیازی به جعل و زور نداریم شافعی گوید،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 آقایان جهت ادای نماز جلسه را ترک کردند و پس از بازگشت ایشان و صرف چای بحث پی گرفته شد. حضرت آقا چرا حضرت علی کرمن لابچه او در شب هجرت با رسول الله همراهی نکرد و در مکه ماند؟ علت اینکه امیر مؤمنان در شب هجرت همراه پیامبر نبود کارهایی بود که باید انجام میداد. داد. امانتهایی که از مردم دست پیامبر سپرده شده بود باید توسط امین پیامبر یعنی علی برگردانده میشد. همچنین خاندان پیامبر و بقیه مسلمانان باید به مدینه هدایت میشدند. و از همه مهمتر خوابیدن در بستر پیامبر جهت حفظ جان آن حضرت نیست جزو برنامه های الهی و بر عهده نفس پیامبر یعنی علی است. اگر ابو به علت همراهی با پیامبر سانی اصنعین شده است، در همان شب یک آیه مستقل در شعن امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شد. خواهش میکنم جریان آن شب را مفسد بیان کنید.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 و منن ناسه من یشری نفسه و ابتقا امر از آت و رعوفم به حال منصفانه خضابت کنید کدام یک از این دو برترند کسی که جان خود را به خاطر پیامبر در معرض تیغ افراد چین توزی چون ابو جهل و ابو قرار میدهد یا آنکه دوسه دو سه روز با ترس و استراب در قار همراه پیامبر بوده و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 از نظر علمی که به شهادت تاریخ هیچ گونه رشادتی از عمر نقل نشده در دوران خلافت هر گونه مشکل علمی که برای خلافا پیش میآمد به دست علی امیر مؤمنان حل بیشد تعداد دفعاتی که خلفا در برابر مسائل علمی درمانده بسیار است بعضی از محققان از ابو نقل کردن که مکررن می گفت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 بعد از این واقعه ناراحت کننده رسول خدا پرچم را به امیرالمومنین داد و ایشان با وضع خارق العاده نبرد را به سود اسلام خاتمه دادند. پس قضاوت منصفانه ما را وادار میکند که مصداق اشدّاء علی الکفار را شیر بیشه شجاعت حیدر کرار بدانیم که در هیچ تاریخی از میدان جنگ فرار نکرد همین معنا در آیه 54 سوره مائده نیز ذکر شده یا ای حلذین امنو من یرتد منکم عن دینی فسوف یعذبه الله بقام یحبهم ویهبونه ازلته علالمومنین اعزه علالکافرین شما میخواهید این آیه که در وصف تمام مؤمنان است را منحصرا در شأن علی کرم الله وجهه وصف کنید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 به خدا قسم محبت و دوستی خداوند به علی بیشتر از محبت من به اوست. اگر شما حدیث رایت را شنیده بودید، قبول کردید که محبوب ترین افراد نزد رسول خدا علی بود است و بس؟ عزت آقا، اگر زحمتی نیز خواهش میکنم، حدیث رایت را شهر دهید. زمانی که لشکر اسلام خیبر را محاصر کرده بود،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 و صد هزار درهم به پدر مروان بخشید. عمل قبیه دیگرش روی کارآوردن فجار بنی امایه است که از جمله حکم ابن ابل و پسرش است که هر دو مترود و ملعون رسول اکرم بودند. دلیل شما بر ترد و لعن آنها چیست؟ اولا خداوند متعال سریحن بنی امایه را به عنوان شجره ملعونه معرفی فرموده.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 ولی عثمان آنها را به دور خود جمع کرد و بیش از حد به آنها مهربانی کرد. باغن کارهای عثمان بسیار عجیب است. از یک سو چون این افراد ملعونی که مترود خدا بودند را به دور خود جمع میکرد و سوی دیگر صحابه پاک رسول خدا را شکنجه یا تبعید می کرد. عزلت آقا مگر خلیفه چه افرادی را تبعید و شکنجه کرده؟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 البته برخلاف دستور وی دی از بزرگان به مشایعت ابوذر رفتند که به همین خاطر مورد اهانت و بازخواست قرار گرفتند به عنوان مثال به جرم مشایعت ابوذر چهل تا زیانه به عبدالله ابن مسعود زده شد این آزار و اذیت تقصیر معموران بوده و الا عثمان بسیار رحیم و مهربان بوده مثلی هست که میگوید زمادر مهربان تر دای خاتون آقای عزیز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 اولا در کلمه ولی و کم ولی مفرد است نه جمع و زمیر کم که جمع است مربوط به امت است ثانیا آنچه را که بعضی از علمای متاسب شما مورد اشکال قرار دادهاند کلمات اللذینه و یقیمونه و یعتونه است که جمع باشد.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 آیا این گفته شما این را نمی‌رساند که بقیه اصحاب در ایمانشان ثابت خدم نبودند؟ اولا من قصد کرایگوی نداشتم، ثانیان، اگر این سوال را خصوصی از من می‌پرسیدید، بهتر بود. طوری صحبت می که انگار یک مطلبی را در نظر دارید ولی نمی خواهید بگویید. به شهادت آیات و روایات، اغلب صحابه که هنوز به مراتب بالای ایمان نرسیده بودند،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 عمر بارها و بارها در نبوت پیانبر اسلام شک می کرده. در جریان صلح هدعیبیه می گوید هرگز در نبوت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم شک نکرده بودم. به اندازه شکی که در روز هدعیبیه کردم از این حرف معلوم می شود که اون مکررن گرفتار تردید می شده در این هنگام به دلیل گذشتن وقت مجلس این جلسه خاتمی یافت.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 بدین ترتیب جلسات مناظر بین جناب سلطان الوائزین و علمای اهل سنت با اصرار علمای دیگر همچنان ادامه یافت